اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام را تیلک آیات الكتاب المبین به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام را آن آیات کتاب آشکار است. قرآن لعلكم ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم. شاید شما درک کنید و بیاندیشید. نحن نقص عليك احسن القصص بما بما اوحينا اليك هذا القران وانتم من قبله وانتم من قبله لمن الغافلين ما بهترین سرگذشتها ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو میکنیم و مسلما پیش از این از آن خبر نداشتی اذ قال یوسف لعبیه یا ابت اینی رأیت أحد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سچه می‌کنند. کنند قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدونک کیده این الشیطان لی انسان عدوم مبین گفت فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی میکشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است و كذلك و من تأویل وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَكُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ قُونِهِ پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر خوابها به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می‌کند همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است لقد كان في يوسف واخوته اخوته آيات للسائلين در داستان یوسف و برادرانش نشانه های هدایت برای سؤال کنندگان بود اذ قالوا ليوسف و اقوه احبو الى منا و نحن عصبه و نحن عصبت این لفی ضلال مبین هنگامی که برادران گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدر از ما محبوبترند، در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم مسلماً پدر ما در گمراهی است. یوسف لكم وجه وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما را بکشید یا او را به سرزمین دور دوردستی کنید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن از گناه خود توبه میکنید و افراد صالحی خواهید بود وَالْقَائِلُونَ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ فِي غيابة الجب يلتقطه بَعْضُ السَّيَّارَةِ, يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فَاعِلِينَ يكي از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر میخواهید کاری انجام دهید او را در نهانگاه چاه بیفکنید تا بعضی از قافله‌ها او را برگیرند و با خود به مکان دوری ببرند قالوا أبانا ما لك لا و انا و, انا له و برای انجام این کار برادران نزد پدر آمدند و گفتند پدر جان چرا تو درباره برادرمان یوسف به ما اطمینان نمیکنی در حالی که ما خیرخواه او هستیم فردا او را با ما به خارج شهر بفرست تا غذای کافی بخورد و تفریح کند و ما نگهبان او هستیم قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف واخاف ان ياكله الذئب و انتم عنه غافلون پدر گفت من از بردن او غمگین میشم و از این میترسم. که گرگ او را بخورد و شما از او قافل باشید الذئب گفتند: با اینکه ما گروه نیرومندی هستیم اگر گرگ او را بخورد ما از زیانکاران خواهیم بود و هرگز چنین چیزی ممکن نیست. فلم ما ذذهب به وج أي جعلهم في غيابة الجبه و حناائلت نببي أنم بمرهم هذا وهم لا يشعون هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند وی را در نهانگاه چاه قرار دهند سرانجام مقصد خود را عملی ساختند و به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان با خبر خواهی ساخت در حالی که آنها نمیدانند برادران یوسف شب هنگام گریان به سراغ پدر آمدند قولوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فَأَكَلَهُ الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قفتان <تصفيق> ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اساس خود گذاردیم و گرگ او را خورد تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد هرچند راستگو باشیم و جاؤو علا قمیصهی بدم كذبه قال ذل سولت لكم انفسكم أمرا فصبر جمیل والله الله المستعان على ما تصفون و پیراهن او را با خونی دروغین آغشت ساخته نزد پدر آوردند گفت حواسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته من صبر جمیل و شکیبائی خالی از ناسپاسی خواهم داشت و در برابر آنچه میگویید از خداوند یاری میطلبم وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلادل قال يا مشرانا ذالام واسره بضاعه والله عليم بما يعملون ودر همین حال کاروانی فرار و مأمور آب را به سراغ آب فرستادند او دلو خود را در چاه افکند ناگهان صدا زد باد این کودکیست زیبا و دوست داشتنی و این امر را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خداوند به آنچه آنها انجام می دادند آگاه بود و شررهم بثمن بخس درهم معدودتی و کانو و کانو فیهمین الزاهدین. و او را به بهای کمی چند درهم فروختند و نسبت به فروختن او بی رقبت بودند، چرا که می رازشان فاش شود.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 وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله, والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون که او را از سرزمین مصر خرید عزیز مصر به همسرش گفت مقام وی را گرامی دار شاید برای ما سودمند باشد و یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم و این چونین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم ما این کار را کردیم تا او را بزرگ داریم و از علم تعبیر خواب به او بیاموزیم بر برکار خود پیروز است ولی بیشتر مردم نمی دانند و, بلغ أشده و, و, و هنگامی که به بلوغ و قبت رسید ما حکم نبوت و علم به او دادیم و این چنین نیکو کاران را پاداش میدهیم. و هو في و فی عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هید لک آلم الله این و ربی احسن مثوای لا يفلح الظالمون و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد درها را بست و گفت بیا به سوی آنچه برای تو محیاست یوسف گفت پناه میبرم به خدا او عزیز مصر صاحب نعمت من است مقام مرا گرامی داشته آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم مسلما ظالمان رستگار نمیشوند و لقد همت به وهم بها لولا ارا برهان ربیه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اینه من عبادین المخلصین آن زن قصد او كرد و او نیز اگر برهان پروردگار را نمیدید قصد وی می نمود این چونین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود واستبق الباب وقدت قدت قمیصه من دبر و الف یا سیده لد الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن او عذاب أليم و هر دو به سوی دویدند در, در حالی که همسر عزیز یوسف را تقریب میکرد و پیراهن او را از پشت کشید و پاره کرد و در این هنگام آقای آن زن را نزدیک دریافتند آن زن گفت کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟ قال هی راودتنی عن نفسی و شاهد من اهلها این كان قمیصه قد من قبل فصدقت, فصدقت و هو من الكاذبین یوسف گفت او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده، آن زن راست میگوید و او از دروغ گویان است. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده آن زن دروغ میگوید و او از راست گویان است. فلن ما رآ قمیصا و قد من دبر قال قال اینه من کید کن, کن عظیم هنگامی که عزیز مصر دید پیراهن او یوسف از پشت پاره شده گفت این از مکروهیله شما زنان است که مکر و شما زنان عظیم است یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف از این موضوع صرف نظر کن و تو ای زن نیز از گلاحت استغفار کن که از خطا بودی وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فی ضلال مبین این در شهر منعکس شد گروهی از زنان شهر گفتند همسر عزیز جوانش قلامش را به سوی خود دعوت می‌کند عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده ما او را در گمراهی آشکاری می‌بینیم فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم واعددت لهن واعددت لهن متكئا واتدت كل واحده منهن سَكِينَوْ وَقَالَتْ وَقَالَتِ خُرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ لَحَشَلِ اللَّهِ وَقُلْ لَحَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ هنگامی که همسر عزیز از فکر آنها باخبر شد به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی گرانبها و مجلس باشکوهی فراهم ساخت. و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن داد و در این موقع به یوسف گفت وارد مجلس آنان شد هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند و بی توجه دستهای خود را بریدند و گفتند منزه هست خدا این بشر نیست این یک فرشته بزرگ است قالت فذار کنن لذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسی فاستعصم ولا اینلا میفعلم ما سیجنن نه ولا یقولونم مینا همسر عزیز گفت این همان کسی است که به خاطر عشق او مرا سرزنش کردید. آری، من او را بخیشند دعور کردم و او خودداری کرد. و اگر آنچه را دستور میدهم، انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلماً خارو زلیل خواهد شد. قال رب السجن جنو احب إلي مما يدعونني يدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أصب إليهن، وأكن من الجاهلين. يوسف گفت. پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود ف ج او صرافهده این هوسه مییم پروردگارش. دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بگردانید چرا که او شنوا و داناست و بعد از آن که نشانه های پاکی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند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 و دو جوان همراه او وارد زندان شدند یکی از آن دو گفت من در خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل میکنم و پرندگان از آن میخورند. خورند ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از نیکو کاران می بینیم. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إلا, إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ, وهم بِالْآخِرَةِ هُمْ كافرون یوسف گفت پیش از آن که جیره قضائی شما فرارسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت این از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند و به سرای دیگر کافرند ترک گفتم و شایسته چنین موهبتی شدم والتبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعل الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من از آین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی بیشتر مردم شکر گذاری یا صاحب استجنی ارباب متفرقون خیر ام الله ام الله الواحد القهار ای هم راهان زندانی من آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز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 ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون این معبودهایی که غیر از خدا می چیزی جز اسمهایی بی مسمع که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده حکم تنها از آن خداست پارمانت داده که غیر از او را نپرستید. این است آین پابر جا، ولی بیشتر مردم نمی دانند. يا صاحب اما أما أحدكما فيسقي ربه خمرا و اما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا ای همراهان زندانی من اما یکی از شما دو نفر آزاد می شود و ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سر او می خورند و مطلبی که درباره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی وقال للذی ظن أنه ناجم منهما اذكرنی عند ربك فأنساء الشیطان ذكر ربی فلبث فی السجن بضع سنین و به آن یكی از آن دو نفر که میدانست رهایی مییابد گفت مرا نزد صاحبت سلطان مصر یادآوری کن. ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد و دنبال آن یوسف چند سال در زندان باقی ماند وقال سبع بقرات سمان یکنهن لسبع عجاف و سنبلات خبر و اخر یابسات یا يا ایوه الملع وفتونی فی رؤیای این کنتم این تعبرون پادشاه گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاغ را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده که خشکیده ها بر سبز ها پیچیدند و آنها را از بین بردند ای جمعیت اشراف درباره خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می‌کنید قالوا و احلام و ما نحن به تأویل الاحلام بعالمين. گفتند خوابهای پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم و قال الذین جا منهما والذكر بعد امت انعونبی اکن به و یکی از آن دو که نجات یافته بود و بعد از مدتی به خاطرش آمد گفت من تعویل آن را به شما خبر می دهم مرا به سراغ آن جوان زندانی بفرستید يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سما لي يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات وسبع سبلات خبروا وأقرئ بساتي لعلي لعلي أرجع إلى او به زندان آمد و چونین گفت. یوسف ای مرد بسیار راستگو. درباره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاغ را هفت گاو لاغر میخورند و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشکیده. تا من به سوی مردم بازگردم شاید از تعبیر این خواب آگاه شوند. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما, فما حصدتم فذروه في سنبله إلا, إلا قلیلا مما تأكلون گفت هفت سال با جدیت زراعت میكنید و آنچه درو کردید جز كمی كه میخورید در خوشه‌های خود باقی بگذارید و ذخیره نمایید ثم ما یاتی من بعد ذلك شداد یا کل قدمتم له الا الا قليلا پس از آن هفت سال سخت و خشکی و قحتی میآید. که را برای آن سالها زخیره کرده اید میخورند جز کمی که برای بذر ذخیره خواهید کرد سپس سالی فرا میرسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال مردم وساره میوه ها و دانه روغنی را میگیرند و سال پر برکتی است وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال رجع الى ربك فاسال فاساله ما بال نسوه اللاتي قطعن پادشاه گفت او را نزد من آورید ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی یوسف آمد گفت به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است. قال ما خطب كن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته, أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين پادشاه آن زنان را طلبید و گفت: به هنگامی که یوسف را به سوی خیش دعوت کردید، جریان کار شما چه بود؟ گفتند: منزه هست خدا، ما هیچ عیبی در او نیافتیم. در این هنگام همسر عزیز گفت: الان حق آشکار گشت، من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از راست راستگویان است. ذلك انی لم اخنه و الله, و الله لا یهدی الخائنین این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در قیاب به او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را هدایت نمی‌کند و ما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور من هرگز خودم را تبرئه نمیکنم که نفس سرکش بسیار به بدی ها امر میکند مگر آنچه را پروردگارم رحم میکند پروردگارم آمرزنده و مهربان است. وقال الملك اتونى به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وی را مخصوص خود گردانم هنگامی که یوسف نزد وی آمد و با او صحبت کرد پادشاه به اقل و درایت او پی برد و گفت تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری و مورد اعتماد هستی قال جعلی علی حفیظ یوسف گفت مرا سرپرست خزائین سرزمین مصر قرارده که نگه و آگاهم. وكذلك مكننا لیوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين واينونه ما بيوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هر جا میخواست در آن منزل میگزید و تصرف میکرد ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم می و پاداش نیکوکاران را زایع نمی کنیم و اجر الآخرت خیر للذین آمنوا اما پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند بهتر است وجاء کن آن را قحطی فرا گرفت برادران یوسف در پی مواد غذایی به مصر آمدند و بر او وارد شدند او آنان را شناخت ولی آنها او را نشناختند ولمّا جهزوا بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني او في الكيل وانا خير و هنگامی که یوسف بارهای آنان را آماده ساخت گفت نوبت آینده آن برادری را که از پدر دارید نزد من آورید آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانان هستم؟ و اگر او را نزد من نیاورید نکیل و پیمانه از قله نزد من خواهید داشت و نه اصلا به من نزدیک شوید. قالوا سنراود عنه أباه لفاعلون گفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد و سعی می کنیم موافقتش را جلب نماییم و ما این کار را خواهیم کرد و قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها اذا قلبو الى اهلیم لعلهم سپس به کارگزاران خود گفت آنچرا به عنوان قیمت پرداخته اند در بارهایشان بگذارید شاید پس از بازگشت به سوی خانواده خیش آن را بشناسند و شاید برگردند فَلَنَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا وَإِنَّا لَهُ لحافظون هنگامی که به سوی پدرشان بازگشتند گفتند ای پدر دستور داده شده که بدون حضور برادرمان بنیامین ای از قله به ما ندهند پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمی از قله دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد قال هل آمنکم عليه الا كما امنتمكم على اخيه من قبل الله خير حافظ وهو ارحم الراحمین گفت آیا نسبت به او به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به برادرش یوسف اطمینان کردم و در هر حال خداوند بهترین حافظ و مهربان مهربانان است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 و هنگامی که متاع خود را گشودند دیدم سرمایه آنها به آنها بازگردانده شده گفتند پدر ما دیگر چه می خواهیم این سرمایه ماست که به ما باز پس گردانده شده است پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی و ما برای خانواده خیش مواد غذایی می آوریم و برادرمان را حفظ خواهیم کرده و یک بار شتر زیادتر دریافت خواهیم داشت این پیمانه کوچکی است قال لن أرسله معكم حتى تؤتونی موثقا من الله لتأتننی به, لتأتننی به الا أن يحاط بكم فلما اتهم موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل گفت من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا پیمان مؤکد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد مگر اینکه بر اثر مرگ یا علت دیگر قدرت از شما سلب گردد و هنگامی که آنها پیمان استوار خود را در اختیار او گذاردند گفت خداوند نسبت به آنچه میگوییم ناظر و نگهبان است وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنكم من الله من شیء. این الحکم الا لله علیه توكلت و علیه فلیتوکل المتوكلون. و هنگامی که میخواستند حرکت کنند یعقوب گفت فرزندان من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق وارد گردید تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود و من با این دستور نمیتوانم توانم حادث ای را که از سوی خدا میست از شما دفع کنم حکم و فرمان تنها ازان خداست بر او توکل کرده ام هم و همه متوکلان باید بر او توکل کنند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 و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از آنها دور سازد جز حاجتی در دل یعقوب که از این طریق انجام شد و خاطرش آرام گرفت و او به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم علم فراوانی داشت ولی بیشتر مردم ولم ولما دخلوا على یوسف آوا إليه أقامه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون هنگامی که برادران بر یوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من برادر تو هستم. از آنچه آنها انجام میدادند غمگین و ناراحت نباش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذنم مؤذن ان ايتها العير انكم لسارقون. و هنگامی که مأمور یوسف بارهای آنها را بست ظرف آبخوری پادشاه را در بار برادرش گذاشت سپس کسی صدا زد ای اهل قافله شما دوست هستید قالوا ماذا آنها رو به سوی او کردند و گفتند چه چیز گم کرده اید قالوا نفقد الملك ولمن جاء به حمل به گفتند پیمانه پادشاه را و هر کس آن را بیاورد یک بار شطور قله به او داده می شود و من زامن این پاداش هستم قولوت الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کننا سارقین گفتند به خدا سوگن شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين آنها گفتند اگر دروغگو باشید کیفرش چیست قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین گفتند هر کس آن پیمانه در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد بود و به خاطر این کار برده شما خواهد شد. ما این گونه ستمگران را کیفر می دهیم فبدأ بی قبل وعاء اخیه ثم استخرجها, ثم استخرجها من وعاء اخیه كذلك کلنا لیوسف ما كان ليأخذ أقامه في دين الملك إلا إلا أي شاء الله درفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم در هنگام يوسف قبل از بار برادرش به بکاوش بارهای آنها پرداخت سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد اینگونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم او هرگز نمیتوانست برادرش را مطابق آیین پادشاه مصر بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد درجات هر کس را بخواهیم بالا میبریم و برتر از هر صاحب علم آلم است قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون برادران گفتند اگر او بنیامین دزدی کند جای تعجب نیست برادرش یوسف نیز قبل از او دزدی کرد یوسف سخت ناراحت شد و این ناراحتی را در درون خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد همین اندازه گفت شما از دیدگاه من از نظر منزلت بدترین مردمید و خدا از آنچه توصیف میکنید آگاه تر است قالوا يا ايها العزيز ان له اذى شيخ كبير فخذ احدنا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين گفتند ای عزيز او پدر پیری دارد که سخت ناراحت می شود یکی از ما را به جای او بگیر ما تو را از نیکوکاران می بینیم قالم عز الله ان لأخوذ الا من وجدنا متاعنا عنده اینا ایزا لغالمون گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته این بگیریم. در آن صورت از ظالمان خواهیم بود. فلم استیعسو منه خلصون جیا قال کبیرهم علم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم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 انگامی که برادران از او معیوز شدند، به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند. برادر بزرگشان گفت، آیا نمیدانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟ من از این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم به من اجازه دهد، یا خدا درباره من داوری کند، که او بهترین حکم کنندگان است. ارجعوا إلى آبیم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق وما شهيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید پدر، پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه میدانستیم گواهی ندادیم و ما از قیب آگاه نبودیم واسألی القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون و اگر اطمینان نداری از آن شهر که در آن بودیم سوال کن و نیز از آن قافله که با آن آمدیم بپرس و ما در گفتار خود صادق هستیم قالبا سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسل الله این یأتینی بهم جمیعا ایندهو هو العلیم الحکیم یعقوب گفت هوای نفس شما مسئله را چنین در نظرتان آراسته است من صبر می کنم خاطری زیبا و خالی از کفران امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند چرا که او دانا و حکیم است و تولا عن... وتولى عنهم وقال يا أسفه و يا أسفه على يوسف و بيرضت عيناه من الحزن فهو كاظيم. وعنه روی برگرداند و گفت: وا أسفه بر يوسف. و چشمان او از اندوخ سفید شد اما خشم خود را فرو میبرد و هرگز کفران نمی‌کرد قالوا تالله تفتا تذكر یوسف حتی تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين گفتند به خدا تو آنقدر یاد یوسف می تا در آستانه مرگ قرار گیری یا حلاک گردی قال انما اشکو بسی و إلى الله و من الله ما لا تعلمون گفته من غم و اندوه هم را تنها به خدا میگویم و شکایت نزد او میبرم و از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا معیوس نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا معیوس میشوند. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا اَخْضُرُ وجئنا, وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ان هنگامی که آنها بر او یوسف وارد شدند گفتند ای عزیز ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی برای خرید مواد غذایی با خود آورده ایم پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدق و بخشش نما که خداوند بخشندگان را پاداش می‌دهد. دهند قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون گفته آیا دانستید با یوسف و برادرش چی کردید؟ آنگاه که جاهل بودید؟ قالو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 گفتند آیا تو همان یوسفی؟ گفت آری من یوسفم و این برادر من است خداوند بر ما مننت گذارد هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید سرانجام پیروز می شود چرا که خداوند پاداش نیکو کاران را زایع نمی کند قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَ كَاللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ گفتند به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیم قَالَ لَا تَسْرِي بَعَلَيْكُمُ الْيَوْمِ یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین یوسف گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست خداوند شما را میبخشد و او مهربان ترین مهربانان است اذهبوا بقمیصی هذا فا فألقوه على وجه أبی یأتی بصیرا بصيرا بصيرا وأتونی بأهلكم جمعین این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید تا بینا شود و همه نزدیکان خود را نزد من بیاورید العير قال أبوهم قال ريح هنگامی که کاروان از سرزمین مصر جدا شد پدرشان یعقوب گفت من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا به نادانی و عقلی نسبت ندهید ضلالك گفتند به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجِهِ فَرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اما هنگامی که بشارت دهند فرا رسید آن پیراهن را بر صورت او افکند ناگهان بینا شد. گفت: «آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ لنا ذنوبنا این گفتند: پدر: از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطا بودیم. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم قلت بزودی برای شما از پروردگارم آمرزش میطلبم طلبم که او آمرزنده و مهربان است ثنا لما دخلوا على يوسف آوا إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت همگی داخل مصر شوید که ان الله در امن و امان خواهید بود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 وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن لَزَغَ الشَّيْطَانُ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن لَزَغَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لما يَشَاءُ اینهو هو و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت پدر این تعبیر است که قبلا دیدم پروردگارم آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفنني مسلما والحقني بالصالحين طوردغارا بخشي عظیم از حکومت به من و مرا از علم تعبیر خوابها آگاه ساختی ای آفریننده آسمان ها و زمین تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم ایذ اجمعون امرهم و هم یمکرون این از خبرهای غیب است که به تو وحی میفرستیم تو هرگز نزد آنها نبودی هنگامی که تصمیم می و نقشه می وما و ما اکثر ناس ولو حرست بی و بیشتر مردم هرچند اصرار داشته باشی ایمان نمی آورند. و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا بکر للعالمین و تو هرگز از آنها پاداشی نمی طلبی. آن نیست مگر تذکری برای جهانیان و من آیتیم فی السماوات والارض یمرون علیها يمرون عليها و وهم عنها معرضون و چه بسیار نشانه از خدا در آسمانها و زمین که آنها از کنارش می و از آن روی گردانند و ما یؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند. افأَمِنُوا أن تَأْتِيَهُمْ غَرَشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أو تَأْتِيَهُمْ او تأتيهم المساعده بغته وهم لا یشعرون آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنان بیاید یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد در حالی که متوجه نیستند قل هذه سبیلی ادعوا الی الله على انا و و الله و انا من بگو این راه من است من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت کنیم منزه است خدا و من از مشرکان نیستم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 و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل آبادیها که به آنها وحی میکردیم. آیا مخالفان دعوت تو در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است آیا فکر نمی کنید؟ حتى إِذَا استيأس الرسل وظنوا, وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند تا آنگاه که رسولان معیوز شدند و مردم گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکار لقد كان في قصصه معباره لئل الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا وهدا ورحمة لقوم يؤمنون در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. اینها داستان دروغی نبود بلکه وحی آسمانی است و هماهنگ است با آنچه پیش روی او از کتب آسمانی پیشین قرار دارد و شرح هر چیزی که پایه سعادت انسان است و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آفرن